بنام خدای یگانی مهربان. سلام افسانه ها از جمله نقاط روشن و زیبای فرهنگ غنی ایران زمینن که روح هر خاننده و شنونده رو نوازش میدن افسانه هایی که در طول تاریخ سینه به سینه و نسل به نسل منتقل شده و یار دیرینه شبنشینی های قدمای ما و بسیاری از ما بوده و هست در برمی این هفته هزار افسان، افسانی ایرانی براتون نقل کنم از مردمان سرزمین فارس به نام افسانی دست قرمزی برگرفته از کتاب قصه های فارس با گردآوری حسینزاده و بازنویسی و ویرایش عباس مخبر در زمانهای قدیم تاجری بود درستکار و مؤمن و خوشخور اون بسیار آدم خوبی بود و سفرهای زیادی رفته بود در یکی از سفرها که به زیارت خونه خدا می رفت به جای خوش آب و هوایی که رسید دستور داد بارها رو بندازن و کمی استراحت کنند. تاجر در اطراف مشغول گردش شد و همینطور که میگشت، به لب ای رسید که آب زلال و روشنی داشته. هوس کرد که آبی بنوشه نوشه و به سر و صورت بزن. همین که دستش رو توی تو آب کرد، یه دست قرمز از وسط آب بیرون اومد و مچ دست تاجر رو گرفت. این بکش و اون بکش. تاجر با التماس گفت، تو رو... تو رو به هر کی میپرستی کی هستی و با من چیکار داری؟ دستم رو ولکن. کن، من مسافرم، زائر خونه خودم، بذرت برم یه کاروان منتظر منم، دستم رو ولکن. کن، من رو کن. خواهش میکنم دست قرمز گفت، به شرطی ولت میکنم که قسم بخوری بعد از زیارت برگردی و اگه نیومدی پسرت رو بفرستی بیا اگه اصلا خبری ازت نشد سواب حج تو مال من و جواب قسم خوردنت هم با خودت تاجر به ناچار قبول کرد و قسم خورد دست قرمزی تاجر رو رها کرد تاجر به زیارت خونه خدا رفت و از سفر برگشت اما همه چیز زیادش رفت تا به شهر خودش رسید وقتی مردم از حال و حکایت سفر از مرد تاجر میپرسیدن و اون براشون با آب و تاب شهر می یه مرتبه ماجرای دریاچه و دست قرمزی یادش اومد. رنگ از صورت تاجر پرید. به طوری که زن و تنها پسرش متوجه تغییر حالت اون شدن و از اون خواستن تا هرچی پیش اومده براشون تعریف کنه. تاجر افسانه ما هم ناچار قضیه رو برای خانوادهش تعریف کرد پسر تاجر که جوانی وجیه و نیکوکار بود گفت پدرجان اجازه بده من برم تاجر بتوندی گفت نه نه نه تو تو تنها پسر منی نه من خودم باید برم ولی پسر اونقدر اصرار کرد تا بالاخره پدر راضی شد که پسرش به جای اون نزد دست خرمزی بره خلاصه پسر نشونی محل رو از پدر گرفت و نون و ای برداشت و به راه افتاد پسر تاجر رفت و رفت و رفت تا رسید به صحرای وسیع و مزرعی که تازه درو شده بود. بین مزرعه و صحرا یه رودخونه بود و لونه مرشه ها اون طرف رودخونه. مرشه ها قصد داشتن از رودخونه عبور کنن اما نمیتونستن. بعضی از روی شاخی درختها میرفتن. درخت به اون طرف رود نمیرسید و توی آب میفتدن. بعضی از موچه از جاده های باریکتر می ولی به اون طرف آب نمی و آب موچه های بیچاره رو با خودش می بود. جوون درخت بلندی پیدا کرد. اون رو از کنده قطع کرد و طوری روی رودخونه انداخت که موچه ها بتونن براحتی از این طرف رودخونه به اون طرف رودخونه برن. با این کار جوون بزرگترین موچه که بالدار بود به جوون نزدیک شد و یه بال خودش رو به جوون داد و گفت دوست عزیز این بال رو با خودت ببر شاید روزی گرهی از کارت باز کنه اگه اونو توی آتیش بندازی ما فوراً حاضر میشیم بعد این گذشت و جوون به راه خودش ادامه داد رفت و رفت تا به منزلی رسید دید کبوتری در حال پروازه و شاهینی داره اونو تحقیب میکنه کبوتر هی بالا و پایین می و شاهین هم دنبالش بود که با چنگال و منگار اونو بزنه و بخوره کبوتر پایین اومد و جلوی پای جوون افتاد جوون اونو گرفت و شاهین رو فراری داد کبوتر توی دستای جوون نفس نفس میزه. یکمی که آروم شد جوون اونو زمین گذاشت کبوتر برای تشکر از جوون، یه پر از بال خودش پون داده گفت دوست من هر وقت کاری داشتی فقط کافیه این پر رو توی آتیش بندازی اون وقت من فوری به کمکت میان جوون افسانه ما پر رو از کبوتر گرفت و به راه خودش ادامه داد. اون افسانه ما یعنی پسر مرد تاجر رفت و رفت و رفت تا به جنگلی پر از درخت و صخره رسید اون میخواست کمی استراحت کنه چون خیلی خسته شده بود بالاخره جایی برای نشستن پیدا کرد و نشست که یه دفعه صدای نقره‌ای شیری به گوشش رسید جوون فورا پشت درختها پنهون شد چند لحظه بعد شیری رو دید که بسیار قوی حیکل بود اما یه پاش میلنگید و به سختی راه میرفت و نعره میکشید شیر یه جایی پیدا کرد و خوابید جوان آروم از مخفیگاه بیرون اومد و به شیر نزدیک شد دید که سر شاخی تیز و کلفتی در پای شیر فرو رفته و ورم کرده جوون سبر کرد تا شیر خوب به خواب رفت اون وقت خیلی آروم و بی صدا به شیر نزدیکتر شد و سرش آخر رو گرفت و با یه ذر از پای شیر بیرون کشید و فوری دوید و پشت درخت و پنهون شد شیر چند دقیقه نقره کشید و نالید اما کم کم آروم گره دید که پاش سبک شده و دردش کم شده روی پاشراه رفت و فهمید که کسی به اون کمک کرده برابر با صدای بلند گفت هر که هستی خودتو نشون بده من با تو کاری ندارم فقط میخوام بهت خدمت کنم بله خدمت به کسی که این شاخه دردناک رو از پای من درابه جوون این حرفها رو که شنید آروم و با احتیاط از مخفیگاه بیرون اومد. چیر سر و خودش رو به پاگی جوان مالید و گفت پسر جان چند مو از یال من بچین و با خودت داشته باش. هر وقت گرفتار سختی و مشکل شدی اونو توی آتیش بنداز تا من حاضر بشم. اون وقت هر کاری از دستم بیاد برات انجام میدم خلاصه، جوون چند تار از یالهای شیر و گرفت و دوباره راه افتاد رفت و رفت تا به شهری رسید آباد و خوش آب و هوا قصر بزرگ پادشاه از دور پیدا بود و خود نمایی می کرد جوون وارد شهر شد و توی شهر گردش کرد تا به قصر رسید دید بالای قصر و بر کنگره اون سرها زیادی رو بریده و گذاشتن دور تا دور قصر فقط جای یه سر خالیه جوون از هر کسی میپرسید ماجرا چیه و اینجا چه خبره کسی جوابش رو نمیداد. تا اینکه پیرزنی رو پیدا کرد مقداری پول به اون داد و توی خونه اون پیرزن مستقر شد جوون از پیرزن ماجرا رو پرسید. پیرزن گفت: پادشاه دختر زیبایی داره که هرکس کس خواهان اون باشه باید به سه تا سوال پادشاه درست جواب بده. وگرنه سرش بریده میشه و بر کنگری قصر آویزون میشه، پسرم. جوون سری تکون داد گفت: ها. پس این سرها متعلق به جوونایی که خواهان دختر پادشاه بودن و نتونستن به سوالات پادشاه جواب درست بدن. درسته؟ پیرزن آهی کشید و گفت درست درسته جوونای بیچاره و ناکام. جوون افثانه ما چند دحظهی به فکر فرو رفت و یه دفعه گفت آه شاید من بتونم به سوالات پادشاه جواب درست بدم. پیرزن با شنیدن این حرف گفت چی؟ نه نه نه نه تو نباید این کار رو بکنی مگه از جونت سیر شدی پسر جان؟ اما جوون افسانه ما تصمیم خودش رو گرفته بود و حرفهای پیرزن روی اون هیچ تأثیری نداشت بنابراین راه قصر رو در پیش گرفت و به راه افتاد جوون به نزدیک قصر پادشاه که رسید به یک گوشه خلوت رفت و پر کبوتر رو آتش زد. در یه چشم هم زدن کبوتر در برابر چشاش ظاهر شد. جوون گفت میخواستم قبل از اینکه نزد پادشاه برم اول دختر پادشاه رو ببینم میتونی کمکم کنی؟ کبوتر بال بال زد و گفت البته دوست عزیز چشمات رو ببند و باز کن. توی جلد من برو پرو برو توی قصر رو شاهزاده خانم رو ببین پسر جوون به جلد کبوتر رفت و تا قصر دختر پرواز کرد اونجا که رسید گذاشت تا دختر تنها شد و خلوت کرد از جلد کبوتر بیرون اومد و رفت پیش شاهزاده خانم دید بله هرچی از زیبایی و نجابت شاهزاده خانم گفتن و اون شنیده درسته شاهزاده خانم که از دیدن جوون یکی خورده بود با تعجب پرسید تو تو کی هستی چجوری اومدی اینجا جوون جواب داد من اومدم که یا به تو برسم و جون بقیه جوونا رو نجات بدم یا سر منم کنار بقیه سرها روی کنگره قصر پدر جا خوش کنه شاهزاده خانم که از شجاعت و دلیلی جوون افسانه ما خوشش اومده بود گفت من میخوام سه شرط پدرم رو برات بگم. اینجوری با آمادگی بیشتری میتونی به راه غلونک فکر کنی. بعد اضافه کرد. پدرم شیری داره که از خواهان من میخواد یا با اون کشتی بگیره یا شیری بیاره که اون شیر رو شکست بده. شرط دوم اینه که خواهان من باید با یه ضربه درخت تنومند چناری رو که روبروی ایوان منه از بالا تا پایین شقه کنه و اما شرط سوم پدرم انباری داره که پر از برنج، گندم، نخود و عدس و ماشه اون از خواستگار من میخواد که یک شب تا صبح همه اون‌ها رو از هم جدا کنه جوون گفت اینا نباید کار سختی باشه شاید شاید من بتونم دو شرط اونو انجام بدم ولی اون درخت اونو فکر نمیکنم بتونم شاهزاده خانم گفت تو جوون لایق و شجاعی به نظر میرسی من من میتونم در مورد اون درخت به کمک کنم قرار شد فردا صبح علل طلوع جوان به قصر پادشاه بیاد و آمادگی خودش رو برای انجام دادن شرط های پادشاه اعلام کنه فردا صبح جوون افسانه ما با آمادگی کامل به غصر پادشاه رفت نگهبان به پادشاه خبر دادن که دیگه ای برای شاهزاده خانم پیدا شده پادشاه اونو به حضور تربید و سه شرط خودش رو برای جوون گفت جوون مکسی کرد و گفت قربان همین فردا جارچی ها رو بفرستید مردم رو توی میدون بزرگ شهر جمع کنن و هرکس شیرش رو بیاره منم شیر خودم رو میارم پادشاه دستور داد که جارچی ها این خبر رو اعلام کنن و به جوون گفت که به خونش برگرده و خودش رو برای شرط اول آماده جوون رفت و فردا صبح در خارج از شهر موی یال شیر رو توی آتیش انداخت در یه چشم هم زدن شیر نر حاضر شد و آمادگی خودش رو برای خدمت به جوون افثانه ما اعلام کرد و جوون خاصه خودش رو برای شیر تعریف کرد شیر گفت اینکه کاری نداره شیر پادشاه هر اندازم که قوی باشه برای من مثل یه گربه دستاموزه آخه من پادشاه شیرها هستم اگه شیر پادشاه منو ببینه یا زهر ترک میشه یا فرار میکنه بهتره کمی گلولای به من بمالی که اون منو نشناسه جوون همین کار رو کرد و بر پشت شیر سوار شد و وارد شهر شدن مردم راه رو برای اونو باز کردن و در گوشه دیگه میدون شیر رو رها کردند. دو شیر روبروگ هم با چنگال زمین رو میکندن و پنجه تیز میکردن از هر دو طرف میغردن و مردم منتظر بودن تا ببینن کدوم شیر پیروز میشه شیرها با هم درگیر شدن و یه دفعه شیر جنگری چنان گردن شیر پادشاه رو گرفت و تابون که استخون کتف شلوی پادشاه افتاد و فریاد هورا و جنجال مردم بلند شد بله جوون افسانه ما شرط اول رو برده بود و حالا باید خودش رو برای شرط دوم آماده میگه جوون بعد از پیروزی در شرط اول فردای اون روز به قصر پادشاه رفت پادشاه گفت درسته تو شرط اول رو بردی ولی مطمئن باش نمیتونی از شرط دوم جون سالم به در ببری تو دیگه نباید از قصر بیرون بری امشب تا صبح باید تموم عدس، ماش، گندم، برنج و نخدهای توی انبار رو از هم جدا کنی. وگرنه؟ فردا صبح سرت بالای گنگری قصد خود نمایی میکنه. جوون گفت قربان انبار کجاست؟ انبار رو به جوون نشون دادن. بعد گفت فیلن اجلی ندارم، بهتر اول یه غذای حسابی بخورم و استراحتی بکنم تا شب همه از این حرف جوون دچار حیرت و شگفتی شدن و پادشاه قاه قاه خندید و دستور داد برای جوون غذا بیارن جوون آخر شب که شد بال مورچه رو توی آتیش اندار مورشه های بالدار از هوا و بیبال ها از زیر شکاف در و دیوار چنان جمع شدن که در و دیوار انبار یه دست سیاه شد جوون گفت دوستان من همت کنید و هر دونه رو کناری بزوید مورچه ها دست کار شدن و تا قبل از روشن شدن هوا هر دونه رو در گوشه ای از انبار گذاشتند به طوری که حتی یه دونه از یکی داخل دیگری نبود فردای اون روز پادشاه و مشاوران اومدن جوون در انبار را باز کرد و اونها در کمال شگفتی دیدن هر چیزی به جای خودش انبار شده و یه دونم اشتباه نیست. نستیک بود از این کار جوون شاخ در بیارن جوون با غرور گفت قربان از همین حالا شرط سوم رو هم بگید من کاملا آمادم و پادشاه شرط سوم رو که همون کندن درخت تنومند چنار بود به جوون اعلام کرد جوون خودش رو برای شرط سوم آماده کرد فورا به گوشه خلوتی رفت و پر کبوتر رو توی آتیش انداخت در یه چشم هم زدن کبوتر حاضر شد بعد جوون مثل دفعه قبل توی جلد کبوتر رفت و وارد اتاق دختر پادشاه شد شاهزاده خانم گفت خیالت راحت باشه پول هنگفتی دادن به نجارها و چنار رو بریدن خاکر ها رو هم سر به کردن و شکاف رو هم گرفتن هم که شمشیر رو وسط شکاف بزنی با یه حرکت شنار روزمین میفته خلاصه فردای اون روز جوون در مقابل چشم منتظر مردم شهر پس رفت و پیش رو من. شمشیر رو دو دستی بالای سر برد و محکم زد وسط شکاف و درخت چنار به طرف افتاد مردم شالی کردن و فریاد کشیدن و جوون رو روی دست بلند کردن خلاصه پادشاه که چاره جز قبول این وضعیت نداشت دستور داد شهر رو چراغانی کنن شیخ اومد و خطبه عقد رو خوند و هفت شبان رو ساز و نقاره و جشن برپا کردن و دختر پادشاه رو به عقد جوون در همه چیز به شاودی و خوشی برگزار شد. جوون اونگرد خوشحال بود که یادش رفت اصلا برای چی از شهر و دیارش بیرون اومده و پدر و مادرش منتظر و نگران حال اونن. قضیه دریاچه و دست قرمزی و قسم پدرش خلاصه. جوون افثانه ما پاک همه چی رو فراموش کرده بود. مدتی گذشت و جناب داماد یعنی همون پسر مرد تاجر حوص کرد بره شکار. شاهزاده خانم گفت اگه گذرت به فلان جا افتاد اونجای دریاچه زیباییه. جوون یه دفعه یادش اومد که بله برای چی اومده بود به شهر و دست خرمزی منتظر اونه. بنابراین به همسرش گفت من به این شهر اومدم که برم نزد دست خرمزی. من به پدرم قول دادم باید دین پدرم رو ادا کنم. شاهزاده خانم هرچی چی اصرار کرد جوون نپذیرفت و تصمیم گرفت نزد دستخرمزی بره و دین پدرش رو ادا کنه. البته این رو هم براتون بگم که جوون ماجرای شیر و کبوتر و موشه ها رو برای همسر شنی یعنی شاهزاده خانم تعریف کرده بود و موقع رفتن پر کبوتر و یال شیر و بال موشه رو به اون داده گفت اگه لازم شد از اینا کمک بخوا خالص جوون این رو گفت و به طرف دریاچه به راه افتاد جوون به دریاچه که رسید دستش رو توی آب کرد که یه دفعه دست قرمزی بیرون اومد و مچ دست جوون رو گرفت و کشید توی آب و با خودش زیر آب برد. دختر پادشاه یا همون همسر جوون افصال ما وقتی فهمید که چه اتفاقی برای شوهرش افتاده دستور داد هرچه گاو و بوسفند و بز و حیوانات دیگه بود حاضر کردن بعد همه اونا رو از مادرانشون جدا کردن. مادرها رو یه طرف دریاچه به بچه های حیونا رو طرف دیگه بردن. سر و صدای حیونا بلند شد. بعد دستور داد هرچه تبال و چیه بیان کنار دریاچه توی کرناها بدمند. خلاصه چنان سر و صدایی راه اندختن که گوش فلک کر می دست قرمزی که از این همه سر و صدا سخت عصبانی شده بود طاقت نیاورد و از آب بیرون زد و اعتراضکنان از شاهزاده خانم خواستا به این سر و صدا پایان بده ولی شاهزاده خانم به اون گفت نمیشه تو باید شوهرم رو پس بدی دست خرمزی گفت اصلا این کار امکان نداره نمیشه شاهزاده خانم گفت پس حداقل اجازه بده از آب بیرون بیاد و چند کلام با اون حرف بزنم دست خرمزی قبول کرد شاهزاده پر کبوتر رو توی آتیش انداخت و در یک چشم هم زدن حاضر شد شاهزاده تمام ماجرا رو برای اون تعریف کرد دست خرمزی جوون رو کف دست در میون دریاچه بالا گرفت. کبوتر به طرف جوون حرکت کرد و پرواز کنان رفت بالای سر دست خرمزی و در یه چشم به هم زدن جوون رو از چنگ دست خرمزی راها کرد و با خودش به اون طرف دریاچه برد. خلاصه. جوون افسانه ما بعد از رهایی از چنگال دست نزد پادشاه رفت و از اون اجازه گرفت که بره پیش پدر و مادرش. پادشاه هم، جهیزیه مفصلی بار رو شوتران کرد و با تعدادی کنیز و غلام اونا رو راهی کرد. جوون و همسرش به نزدیک شهر پدر که رسیدن همونجا اردو زدند و قاصدی روونه منزله پدر کردن. پدر پیر با افسردگی گفت پسر من حالا گرفتار دست خرمزی شده و معلوم نیست کشته شده یا زنده است. به پیر گفتن نه آقا پسر شما زنده است الانم با سوار و سپاه و عروس و گنج و گوهر برگشته پیرمرد از شنیدن این خبر خوشحال شد و با ناباوری به استقبال پسرش رفت جوون گفت پدرجان قصه نخور که دین تو را ادا کردم و داماد پادشاه شدم اینم عروس منه خلاصه. یه بار دیگه شهر رو آین بندون و چراغونی کردن و جشت گرفتن و به خوبی و خوشی زندگی کردند. ای ایرانی رو از مردمان سرزمین فارس براتون نقل کردم برگرفته از کتاب قصه های فارس به گردآوری حسین آزاده و بازنویسی و ویرایش عباس مخبر وقتی ای رو میخونیم یا میشنویم انگار سالهاست با آدمها، سرزمینها و ماجراهای تلخ و شیرین اون آشناییم راستی راز افسانه ها در چیه هزار افسان کار مشترکی بود از نویسنده و سردبیر زینت سالحپور ویراستار الهام اشجری اجرا مهران دوستی صدا نرگس فتحی تیه کننده زهرا عبدالله زاده